فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما وزنان شوهردار بر شما حرام است مگر زنانی که مالک آنان شده اید، این فریضهای ای است که بر شما مقرر داشته است، و غیر از اینها که گفته شد برای شما حلال است، با اموال خود زنان دیگر را طلب کنید، در حالی که پاک دامن باشد و زناکار نباشد، پس آن زنانی را که به ازدواج دارا و از آنان کام گرفتید، باید مهرشان را به عنوان فریزه ای به آنان بدهید، و گناهی بر شما نیست در آنچه بعد از تعیین مهریه با یک دیگر توافق کنید بیگمان خدابند دانای حکیم است و من لم یستطع منکم طولا این ینکی حل محصنات المؤمنات فمیما ملکت ایمانکم من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 محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أشصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم و ان خیر لكم والله غفور رحیم. و هر کس از شما از لحاظ مالی توانایی ازدواج با زنان آزاده مؤمن نداشته باشد پس با کنیزان با ایمانی که ملک یمین شما هستند ازدواج کند و خداوند به ایمان شما داناتر است برخی از برخی هستند پس آنان را با اجازه صاحبانشان به ازدواج خود درآورید و مهرشان به طور پسندیده به آنان بدهید به شرط آنکه پاک دامن باشند نه زناکار و نه آنان که در پنهانی دوستگیرند پس چون ازدواج کردند اگر مرتکب زنا شدند پس مجازاتشان نصف مجازات زنان آزاده است این اجازه ازدواج با کنیزان برای کسانی از شماست از آلایش گناه بترسد و صبر و پاک دامنی پیشه کردند برایتان بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم <تصفيق> و یتوب علیکم والله علیم حکیم خداوند میخواهد که احکام خیش را برای شما روشن سازد و شما را به راه و روش کسانی که پیش از شما بودند راه راهنمایی کند و خداوند دانای حکیم است والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما و خداوند میخواهد توبه شما را بپذیرد و کسانی که از خواستهای نفسانی پیروی میکنند میخواهند شما دست خوشه انحراف بزرگی شوید یُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا خداوند می‌خواهد کار را بر شما سبک و آسان کند به انسان زعیف و انسان ضعیف و ناتوان آفریده شده است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 ای کسانی که ایمان آورده اید، یکدیگر یک دیگر را به باطل نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما باشد و خودتان را مکشید، زیرا خداوند به شما مهربان است. و من یفعل ذلك عدوانا و فسوف نسلیه نارا و کان ذلك على الله یسیرا و هر که روی تجاوز و ستم چنین کند پس به زودی او را در آتشی سوزان درآوریم و این بر خدا آسان است اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده اید دوری کنید گناهان صغیری شما را از شما میزداییم و شما را در جایگاه خوبی وارد می‌کنیم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسالوا الله من فضله اِنَّ <تصفيق> آنچه را که خداوند بدان بعضی از شما را بر بعضی دیگر برتری بخشیده است آرزو مکنید برای مردان از آنچه به دست بهری اند ایست و برای زنان نیز از آنچه به دست آورده است. و از خداوند از فضل و بخشش او بخواهید بیگمان خداوند بر هر چیزی داناست ولكل لكل جعلنا موالی مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا تمام برای هر کس وارثانی قرار داده ایم. که از آنچه پدر و مادر و خیشاوندان بر جای گذاشته اند ببرند و نیز کسانی که شما با آنان پیمان بسته اید نصیبشان را بدهید بیگمان خداوند بر هر چیزی گواه است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 فإن اطعنكم فلا تذلوا عليهم ثبيله إن الله كان عليًا كبيرًا مردان بر زنان سرپرست و نگهبانند به خاطر آنکه خدابند برخی از ایشان را بر برخی برتری داده و نیز به خاطر آنکه از اموالشان خرج میکنند پس زنان صالح و به پاس آنچه خدا برای آنان حفظ کرده اسرار و حقوق شوهران خود را در غیبت آنان حفظ میکنند و زنانی را که از نافرمانی آنها بین دارید پند و اندرزشان دهید اگر فرمانبردار نشد در بستر از ایشان دوری کنید و اگر تأثیر نکرد آنان را بزنید پس اگر از شما اطاعت کردند هیچ راهی برای تعدی بر آنها مجوید بدانید که خداوند بلند مرتبه بزرگ است. و این خفتم شقاق بینهما فدعتو حکما من اهله و من اهلهاد. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يریدا اصلاحا يوفق الله بینهما إن الله كان علیما خبیرا و اگر از اختلاف و جدائ میان آن دوبین داشتید پس داوری از خانواده شوهر و داوری از خانوادی زن بفرستید. اگر این دو داور قصد اصلاح داشته باشند، خداوند میان آن دو سازگاری خواهد داد. بیگمان خداوند دانای آگاه است. و الله ولا تشرکو به شیئا و احسانا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَابِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا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 دوست نمی دارد الّذین <عارد> يبخلون و يأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل واعتدنا للكافرین عذابا مهینا کسانی که بخت می‌ورزند و مردم را به بخل وامی‌دارند و آنچه را که خداوند از فضل خویش به آنها داده کتمان می و برای کافرند عذابی خار کننده آماده کرده ایم. والذین وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِعَاءَ النَّاسِ ولا يُؤْمِنُونَ بالله وَلَا بِالْيَوْمِ الاخر و من یکنی الشیطان له قرینا فساء قرینا. و نیز برای کسانی که اموالشان را برای نشان دادن به مردم انفاق می کنند و به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و کسی که شیطان همدم او باشد چه بد است. وماذا علیهم لو آمنوا بالله والیوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم علیما و اگر آنها به خدا و روز آخرت ایمان میآوردند و از آنچه خدا به آنان روزی داده انفاق میکردند چه زیانی برای آنان داشت و خداوند به آنها داناست ان الله لا یظلم مِثقال ذره و حسنت تک حسنتین یضاعفها و یؤتی من لذنب اجرا عظیما خداوند به اندازی ذره ای ستم نمی کند و اگر کار نیکی باشد آن را دوچندان میکند و از نزد خود پاداش بزرگی عطا می کند. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا پس چگونه است حالشان آنگاه که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر اینان گواهاوریم یومئذ ودل لذین كفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض لو تسوا به الارض و لا الله حدیثا آن روز کسانی که کافر شدند و از پیام بر نافرمانی کردند آرزو می کنند که ای کاش با خاک اکسان میشدند. و هیچ سخنی را نمی توانند از خدا پنهان کنند. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تقتسلوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءَ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا أولا مثتمو النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهكم وأیدیكم إن الله كان عفوا غفورا ای كسانیكه ایمان آوردهاید در حال مستی به نماز نزدیک نشوید تا بدانید چه میگویید و نیز در حال جنابت تا کنید مگر اینکه رهگزار باشید و اگر بیمار یا مسافر بودید و یا یکی از شما از مکان یا حاجت آمد یا با زنان آمیزش کرده اید و آب نیافتید پس با خاک پاک تیمم کنید به این روش که چهره و دستهایتان را با آن مسح کنید بیگمان خداوند بخشنده و آمرزنده است. آلم تَرى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلَّ السَّبِيلُ آیا ندیدی کسانی را که بهری از کتاب به آنها داده شده است گمراهی را میخرند؟ و میخواهند شما گمراه شوید والله الله اعلم بی اعدائیکم و بالله ولی و بالله نصیرا و خداوند به دشمنان شما داناتر است و کافی است که خدا سرپرست شما باشد و کافی است که خدا یاور شما باشد مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ نَتَّبِعُ مَا تَتْلُو عَن أَهْوَائِنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَاسْمَعْ غَيْرَ مَسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَن يَنۢبَغِيَ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع ونظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا وخی از یهود کلمات خدا را از جای خود تحریف میکنند میگویند شنیدیم و نافرمانی کردیم و نیز میگویند بشنو کرگز نشنوی و از روی تمسخر میگویند راعنا تا با پیچانیدن زبان خود به دین اسلام تئنه بزنند ولی اگر آنها میگفتند شنیدیم و اطاعت کردیم و سخنان ما را بشنو و به ما مهلت بده قطعاً برای آنان بهتر و درستتر بود ولی خداوند آنها را به خاطر کفرشان لعنت کرده است لذا جز گروهی اندک ایمان نمی آورند يا أيها الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطم سوjoها فنردها فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَبْبَارِهَا اَوْنَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ عَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولَهِ ای کسانی که کتاب آسمانی به شما داده شده است به آنچه برپیام بر خود نازل کردیم و تصدیق کننده همان است که با شماست ایمان بیاورید. پیش از آنکه صورتهایی را محو کنیم، آنگاه آنها را به پشت سرباز گردانیم یا آنها را لعنت کنیم، همانگونه که اصحاب شنبه گروهی از یهود کنافرمانی نافرمانی کردند و در روز شنبه ماهی گرفتند را لعنت کردیم و فرمان خدا انجام است. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترا اسما عظیما بیگمان خداوند این را كه به او شرك آورده شود نمیبخشد و غیر از آن را برای هر کس بخواهد میبخشد و هر کس که به خدا شرک ورزد یقیناً گناهی بزرگ برباخته است. الَم تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُذَكِّرُ مَن يَشَاءُ آیا ندیدی کسانی را که خیشتن را پاک میشمارند؟ بلکه خداوند هر کس را بخواهد پاک می‌گرداند و به آنها اندازه نخ روی هسته خرمایی ستم نمی‌شوند. او یفترون الله الكذب وکفا اسم مبین ببین چگونه بر خدا دروغ می‌بندند و همین کافی است که این گناه آشکاری باشد.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 آیا ندیدی کسانی را که بهرهای از کتاب آسمانی به آنان داده شدند، به جیب و تاقدُت ایمان می‌آورند و درباره کسانی که کفر ورزیدند می‌گویند، اینان از کسانی که ایمان اند هدایت یافته‌ترند؟ الذین لعنه‌هم الله و یلعن الله فلن تجد له نصيرا آنها کسانی هستند که خداوند لعنتشان کرده را خدا لعنت کند هرگز برای او یا نخواهی یافت ام لهم نصیب من الملك فا لا یؤتونن نازن آیا آنها بهرعی از فرمان و حکومت دارند؟ پس در این صورت به اندازه پوست هسته خرمایی به مردم نمی دادند؟ ام یحتدونن ما فقد آتینا آل ابراهیم الكتاب والحکمت و آتیناهم ملکا عظیما آیا به مردم بر آنچه خداوند از فضل خیش به آنان عطا کرده حسد میبرزند در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان فرمانروایی بزرگ بخشیدیم منهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجحنم مكرا پس برخی از آنان به وی ایمان آوردند و برخی از آنان از او روی گرداندند و برای آنها آتش افروخته جهنم کافی است إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار سوف نصلیهم نار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكيما <تصفح> بيگمان کسانی که به آیات ما کفر برزیدند به زودی آنها را در آتشی سوزان وارد می کنیم که هرچه پوستشان بریان گردد پوستهای دیگری به جایش قرار دهیم تا تعم عذاب را بچشند حقا که خداوند توانمند حکیم است وَالَّذِينَ آمَنُوا و جنات تجری من تحت هالانهار خالدین فیها ابدا لهم فیها و ظلا ظلیلا و کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند به زودی آنها را به باقهای از بهشت وارد می‌کنیم که از زیر درختان آن نر ها همیشه در آن خواهند ماند و در آنجا همسران پاکیزه دارند و آنان را به سایه های گسترده در آبریم.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 بیگمان خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانتها را به صاحبان آنها بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری کنید در حقیقت نیکو چیزی است که خداوند شما را به آن انقدر می‌دهد بیگمان خداوند شنوای بیناست.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 ذلک خیر و احسن است ای کسانی که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر و صاحبان امرتان را و اگر در چیزی اختلاف کردید آن را به خدا و پیامبر بازگردانید اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید این بهتر و خوش تر است ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنذل إليك وما أنذل من قبلك يريدون یریدون ان یتحاکمو إلى الطابوت و قد امرو ان یکفرو بهی و الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا آیا ندید ای کسانی را که گمان می به آنچه چه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده است ایمان آبرده اند ولی میخواهند برای داوری نزد طاغوت بروند با آنها که به آنها دستور داده شده که به او کفر ورزند و شیطان میخواهد گمراهشان کند و به گمراهی دوری بیفکند و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رأیت المنافقین یا عنك قدودا. و چون به آنها گفته شود به سوی آنچه خداوند نازل کرده و به سوی پیام بیایید منافقان را میبینی که از تو سخت روی میگردانند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 پس چگونه وقتی که به خاطر اعمال بدشان مصیبتی به آنان برسد آنگاه نزد تو می آیند سوگند به خدا یاد می کنند که منظور ما جز نیکی و توافق میان طرفین نبوده است اولائک الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعذره وكلهم فاعرض عنهم و وقل لهم فی قولا بلیغا آنان کسانی هستند که خدا آنچه را در دل دارند میداند، پس از آنان روی برگردان و اندرزشان بده و با بیانی رسا کردارشان را به آنها گوش زد کن وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْتُسَهُمْ جَاؤوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهِ جَاء الله لهم لوجد الله ما هیچ پیام را نفرستادیم مگر برای اینکه به فرمان خدا از وی اطاعت شود و اگر آنها هنگامی که برخیشتن ستم می کردند نزد تو می آمدند و از خدا طلب آمرزش می کردند بیگمان خدا را تو به پذیر مهربان می آفتند. فلا <سوس> و لا يؤمنون حتى حتا یحکمو کفی ما شجر بينهم ثم لا یجدو ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و تسلیما نه سوگند به پروردگارت که آنها ایمان نمیآورند مگر اینکه در اختلافات خیش تو را داور قرار دهند و سپس از داوری تو در دل خود احساس ناراحتی نکنند و کاملا تسلیم باشند ولو ان ما کتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه, ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا, لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا و اگر مانند بنی اسرائیل بر آنان مقرر میکردیم که خود را بکشید یا از خانه و شهرهایتان بیرون روید جز اندکی از آنها عمل نمیکردند. و اگر اندرزهایی که به آنان داده می شود انجام میدادند برای آنها بهتر بود و برای ایمانشان استوارتر بود. ائذ آتناهم مد اجان عظیم و در این صورت از جان به خود پاداش بزرگی به آنها میدادیم ولا هدنا هم سررغم و به راه راست هدایتشان میکردیم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ و حسون اولائی رفیقان و کسی که خدا و پیام بر را اطاعت کند روز قیامت هم نشین کسانی خواهد بود که خدا بند برانان انعام نموده است از پیام بران و صدیقان و شهدا و صالحان به اینان چنیکو رفیقانی هستند ذلك الفضل من الله وكفى بالله علیمه این فضل و بخشایش از جانب خداست و کافی است که او داناست یا ایوها الذین آمنوا خضرو حضرکم فانفرو صبات او انفرو جمیعا ای کسانی که ایمان آورده اید سلاح خود را برگیرید آنگاه گروه گروه بیرون روید یا یک پارچه بیرون شوید و این منكم لمن لیبطی ان؟ و این من کم لملل فَإِن آم فا اصابتكم قال قد انعم الله علی ازلم معهم شهیدا. و برایت از میان شما کسی است که از شرکت در جهاد سستی می کند. پس اگر مصیبتی به شما برسد میگوید خداوند بر من انعام کرد که با آنان حاضر نبودم. ولئن آفابكم فضل من الله لا يقولن لا يقولن كألمتكم بينكم و بينه مودت ياليتني كنت معهم یا لایت كنت معهم فافوز فوزا عظیما و اگر فضل و غنیمتی از جانب خدا به شما برسد چنانکه گویا هرگز میان شما و آنان دوستی و مودتی نبوده میگویند ای کاش من هم با آنها بودم و به کامیابی بزرگی نائل می شدم فَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْعُونَ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبَ فَسَوْفَ أجرا پس کسانی که زندگی دنیا را به آخرت فروختند، باید در راه خدا پیکار کنند و آن کسی که در راه خدا پیکار کند چه کشته شود یا پیروز گردد به زودی پاداش بزرگی خواهیم داد وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالمه اهلها واجعل لنا وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا را چه شده از که در راه خدا و مردان و زنان با کودکان از افپی کار نمیکنید. آنان که میگویند، پروردگارا ما را از این شهر که اهلش ستمگرند بیرون ببر و از جانب خود برای ما سرپرستی قرار بده و از جانب خود یار و مددکاری برای ما مقرر کن الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا کسانيك ايمان اورده اند در راه خدا پیکار میکنند و آنان که کافرند در راه تاغوت پیکار می کند پس شما با یاران شیطان پیکار کنید قطعا نیرنگ و نقشی شیطان ضعیف است علم تر ایلالذین قیل لهم کفور أيديكم وأقيم الصلاة وآت الزكاة فلما كتب عليهم القتال إلى فريق منهم يخشون الناس يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية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 آیا ندیدی کسانی را که به آنها گفته شد اکنون دست از جنگ بردارید و نماز را برپا کنید و زکات بدهید پس چون در مدینه جهاد بر آنان مقرر شد ناگاه جمعی از آنان از مردم میترسیدند همان گونه که از خدا میترسند یا بیشتر میترسیدند و گفتند پروردگارا چرا جهاد را بر ما مقرر کردی چرا ما را تا زمانی نزدیک مهلت ندادی بگو متاع دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد بهتر است به اندازی ای به شما ستم نخواهد شد اینما تكونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید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 هر کجا باشید مرگ شما را در هر هرچند در برجهای های محکم باشید و اگر به آنها خیری برسد میگویند این از جانب خداست و اگر بدی به آنها برسد میگویند این از جانب توست بگو همه از جانب خداست پس چرا این قوم حاضر نیستند، سخنی را در کنند؟ ما اصابك من حسنت فمن الله و ما اصابك من سیئت فمن نفسك و ارسلنا رسولا و بالله شهيدا. آنچه از نیکیها به تو پس از جانب خداست و آنچه از بدی به تو رسد از جانب خود توست و ما تو را رسول برای مردم فرستادیم و گواهی خدا کافی است من یطع الرسول فقد اطاع الله و من تولا فما ارسلناک علیه حفیظا <سؤال> کسی که از پیام بر اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده است و کسی که سرباز زند تو را برایشان نگهبان نفرستادیم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 و, بالله و آنان در حضور تو میگویند فرمانبرداریم. و چون از نزد تو بیرون روند، گروهی از آنان برخلاف گفته های تو جلسات سری شبانه تشکیل می دهند. و آنچه در آنجا شبانه نقشی می کشند، خداوند می نویست. پس از آنان روی بگردان و بر خدا توکل کن. و او یار و مدافع تو باشد کافی است افلا یتدابرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا آیا در قرآن نمی اندیشند که اگر از سوی غیر خدا بود قطعا اختلاف بسیار در آن می یافتند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 ولاولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا هنگامی که خبری از ایمنی یا ترس به آنها برسد آن را شایع میسازند در حالی که اگر آن را به پیامبر و صاحبان امرشان باز میگرداندند از حقیقت امر آگاه میشدند و اگر فضل رحمت خدا بر شما نبود جز اندکی از شیطان پیروی میکردید فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك وحرب المؤمنین عسى الله ان يكف بأس الذين كفروا والله اشد باسا واشد انتقاما پس در راه خدا پیکار کن جز بر نفس خودت مکلف نیستی و مؤمنان را تشویق کن امید است خداوند از آسیب کافران جلوگیری کند و خداوند قدرتش بیشتر و کیفرش سختتر است مَن یَشْبَعُ حسن حَسَنَتَي يَكُلُّهُ منها و من یشفع شفاعتا سیئتا سیئت لهم کفل منها و کان الله علا كل شيء مقیطا کسی که شفاعتی نیکند نصیبی از آن برای او خواهد بود و کسی که شفاعت بدی کند سهمی از آن خواهد داشت و خداوند بر هر چیز تواناست وإذا حییتم بتحیة فحیوا بأحسن منها أو ردوها الله كان علی كل شيء حسیبا و چون شما را تهیت و سلام گویند پس پاسخی بهتر و یا همانند آن بدهید خداوند بر هر چیز حساب رسز الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا الله معبودی جزو نیست و یقینا همه شما را در روز قیامت که شکی در آن نیست جمع میکند وكیست که از خداوند راستگوتر باشد فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا چیست شما را که در باری منافقان دو گروه شده اید؟ در حالی که خداوند به خاطر اعمالشان آنان را سرنگون کرده است؟ آیا شما می خواهید کسی را که خدا گمراه کرده است هدایت کنید؟ در حالی که هر کس را خدا گمراه کند برای او راهی نخواهی یافت؟ وَادُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ منهم ولا نصيرا. آنان آرزو می کنند که شما هم مانند آنها کافر شوید تا با هم یکسان شوید بنابراین از آنها دوستانی انتخاب نکنید تا اینکه مسلمان شوند و در راه خدا هجرت کنند پس هرگاه از این کار سرباز زدند هر جا که آنها را یافتید بگیرید و بکشید و از میان آنها یارو یابری اختیار نکنید. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم مثال أو جاءكم حصرت صدورهم أي يقاتلكم أو يقاتل قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتذلوكم فلم يقاتلوكم و إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبیلا مگر آنهایی که با هم پیمانان شما پیمان بسته اند یا آنهایی که به سوی شما می آیند از پیکار با شما یا پیکار با قومشان دلتنگ باشند، و اگر خدا بخواهد آنان را بر شما مسلط می کند تا با شما پیکار کنند، پس اگر از شما کنار گیری کردند و با شما پیکار نکردند و به شما پیشنهاد صلح دادند، پس بدانید که خداوند برای شما بر علیه آنان راهی قرار نداده است، ستجدون آخرين يريدون أي يؤمنونكم ويؤمن قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذرواكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا ويكفوا و ایدیهم تخذوهم گروه دیگری را خواهید یافت که ظاهرا میخواهند از شما در امان باشند و نیز از قومشان در امان باشند و هرگاه به فتنه و بدپرستی باز گردانده شوند در آن فرو می روند. پس اگر از شما کنار نگیرند و پیشنهاد صلح نفرستند و دستشان را از شما باز ندارند هر کجا که آنان را یافتید آنان را به اثارت بگیرید و یا بکشید آنها کسانیند که ما برای شما تسلط آشکاری بر آنان قرار داده ایم.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 فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما هیچ مؤمنی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند مگر از روی اشتباه و خطا و کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خون به خانواده او بپردازد مگر اینکه آنها ببخشند پس اگر مقتول از قومی باشد که دشمنان شما هستند ولی او مؤمن بوده باید قاتل یک برده مؤمن را آزاد کند و اگر مقتول از قومی باشد که میان شما و آنها پیمانی برقرار است، باید خونبههایی به خانوادی او بپردازد و نیز یک برده مؤمن را آزاد کند و هر کس که برده ای نیافت پس دو ماه پی در پی روزه بگیرد، این توبعی از جانب خداوند است و خداوند دانای حکیم است. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه و غضب الله عليه و لعنه و اعدله عذابا عظیما. و هر کس مؤمنی را از روی عمد به قتل برساند کیفرش دوزخ است که در آن جاودانه میماند و خداوند بر او غذب می کند و او را از رحمتش دور میسازد و عذاب بزرگی برای او آماده ساخته است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 بذلِلك كتونُم منِقابل فَم اللهعَ كم فت بنوِ الله كان بِم عملون نخوابی ای کسانی که ایمان آورده اید هنگامی که در راه خدا برای جهاد رسپار شدید پس بررسی کنید و به کسی که بر شما سلام کرد نگویید مؤمن نیستی تا اینکه سرمایه ناپایدار دنیا به دست آورید زیرا غنیمت‌های بسیاری نزد خداست شما نیز پیش از این چنین بودید آنگاه خداوند بر شما مننت گذارد بنابر این بررسی کنید که هر آیین خداوند به آنچه انجام انجام می‌دهید آگاه است لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم صدّل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة و وعد الله الحسنه وفضل الله المجاهدین على القاعدین اجرا عظیما هرگز مؤمنانی که بدون بیماری و آسیب از جهاد باز نشستند با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند یکسان نیستند خداوند کسانی را که با مال و جانشان جهاد کردند بر باز نشستگان مرتبه برتری بخشیده است و خداوند به هر یک از آنها وعده نیکو داده است و خداوند مجاهدان را بر قاعدان با پاداشی بزرگ برتری بخشیده است درجات منه و مغفرت و رحمه وكان الله غفورا رحیما درجاتی در بهشت از جانب خداوند و آمرزش و رحمت نصیب آنان می گردد و خداوند آموزنده مهربان است این الذین توفاهم الملائكة ظالمی انفسهم قالوا فیم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا همانا كسانی كه فرشتگان جانشان را گرفتهند در حالی که به خیشتن ستم کرده بودند فرشتگان به آنان گفتند شما در چه حالی بودید گفتند ما در زمین مستضعف بودیم فرشتگان گفتند مگر سرزمین خدا پهناور نبود که در آن مهاجرت کنید بنابر این جایگاهشان دوزخ است و بعد است إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا, لا مگر آن مستضعفان از مردان و زنان و کودکانی که نچارهای دارند و نرای می فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا رَّحِيمًا پس اینان را امید است که خداوند از ایشان درگذرد و خداوند بخشاینده آمرزنده است. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، ثمّ يدرکه الموت، فقد وقع اجره على الله، وكان الله غفورا رحيما با کسی که در راه خدا هجرت کند. در زمین جاهای امن فراوان و گشایش میابد و کسی که به قصد هجرت به سوی خدا و پیام برش از خانی خود بیرون رود آنگاه مرگش فرارست قطعا پاداشش بر خداست و خداوند آمرزندی مهربان است و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصرو من الصلاة این خفتم این خفتم این یفقینکم الذین کفروا، این الكافرین کانو لکم عدوا مبینه و چون در زمین سفر کنید، گناهی بر شما نیست که نماز را کوتاه کنید اگر ترسید که کافران به شما زیانی برسانند، زیرا کافران برای شما دشمن آشکاری هستند وإذا كنتم فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلتقم طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكون فإذا تجددوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا ولتأت طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم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 او کنتم مرضان تضعو تضعوا و قدو حذركم. این الله اعد للكافرین عذابا مهینا و چون وقت خوف در میان آنها باشی و برای آنها نماز برپا کردی باید دسته ای از آنها با تو به نماز بیستند و باید سلاحایشان را با خود برگیرند و چون سجده کرده‌اند و نماز را تمام نمودند باید دستی دوم پشت سرتان باشند و باید آن دسته ای که نماز نخانده اند بیایند و با تو نماز بخوانند و باید آنها احتیاط کنند و صلاحهایشان را در نماز با خود بگیرند زیرا کافران آرزو دارند که شما از صلاحها و متاعهای خود قافل شوید پس یک بار بر شما یورش برند و اگر برای شما از باران رنجی بود و بیمار بودید بر شما گناهی نیست و مانعی ندارد که صلاحهای خود را بر زمین بگذارید ولی وسایل دفاعی و احتیاط خود را برگیرید همانا خداوند برای کافران عذابی خار کننده آماده کرده است فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا موقوتا. پس چون نماز را به پایان رسان دید. خدا را ایستاده و نشسته و بر پهلوی خیش خوابیده یاد کنید و هرگاه آرامش یافتید و خوف زایل شد نماز را تمام و کامل برپا دارید که همانا نماز در اوقات معینی بر مؤمنان واجب شده است. ولا تهلو في بقرائ القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وکن الله ملیما حکیم و در تعقیب دشمن سست نشوید اگر شما رنج میبرید آنها نیز مانند شما رنج میکشند. ولی شما امیدی از خدا دارید که آنها ندارند و خداوند دانای حکیم است. إنا انزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما يقينا إن كتاب را بحق بر كرديم تا به آنچه خداوند به تو آموخته در میان مردم داوری کنی و مدافع خائنان مباش. و الله, الله كان غفورا و از خداوند آموزش بخواه، حقا که خداوند. آموزنده مهربان است ولا تجادل عن الذين يخطئون أنفسهم. إن الله لا يحب من كان خوانا افیما. و از کسانی که به خود خیانت کردند دفاع مکن یقینا خداوند افراد خیانت پیش یک را دوست ندارد. یستخون من الناس ولا يستخون من الله وهو معهم وهو معهم إذ یبیتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا آنها زشتکاری خود را از مردم پنهان می دارند. اما از خدا پنهان نمیدارند. و او با ایشان است، هنگامی که در جلسات شبانه سخنانی را که خداوند نمی‌پسندد تدبیر می کنند. و خداوند به آنچه انجام میدهند احاطه دارد.. آه آه آه ها اولا ایجابلتم عنهم فی الحیات الدنیا فمن یجابل الله عنهم یوم القیامت امن یکون علیهم وکیلات هان شما کسانی هستید که در زندگی دنیا از آنان دفاع کردید پس کیست که در روز قیامت در برابر خداوند از آنها دفاع کند یا چه کسیست که وکیل و حامی آنها خواهد بود و من او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما و کسی که کار بدی انجام دهد یا بر ستم کند پس از خداوند آمرزش به طلبت خدا را آموزنده مهربان خواهد یافت و من یکسب اثما فانما یکسبه علی نفسه و الله علیما حکیم و هر کس گناهی مرتکب شود پس تنها به زیان خود مرتکب شده است و خداوند دانای حکیم است و من یک سب خطیعتا او اسمن سم یرمی بهی بریعا سم یرمی بهی و هر کس خطا یا گناهی مرتکب شود سپس بی گناهی را به آن متهم کند قطعا بار بهتان و گناه آشکاری را بردوش گرفته است. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم قطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون إلا انفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما اگر فضل خدا و رحمتش شامل حال تو نبود، هر آینه گروهی از آنان قصد داشتند که تو را گمراه کنند و جز خودشان را گمراه نمی‌کنند و هیچ زیانی به تو نمی و خداوند کتاب و حکمت بر تو نازل کرد و آنچرا نمیدانستی به تو آموخت و فضل خدا بر تو بزرگ بوده است لا خیر فی كثير من نجواهم الا من امر بصدقت او معروف او اصلاح بين الناس و يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فتوف نؤتیه اجرا عظیما در بسیار از نجواهایشان خیری نیست مگر که با این کار امر به صدقه دادن یا کار نیک یا اصلاح در میان مردم کند و هر کس برای خوشنودی خداوند چنین کند به زودی پاداش بزرگی به او خواهیم داد و منی شاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبيل المؤمنین ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولا و جهنم و ساعت که پس از آنکه هدایت برایش روشن شد با پیام بر مخالفت کند و از راهی جز راه مؤمنان پیروی کند ما او را به آنچه پیروی کرده باگذاریم. و اورا به جهنم درفکنیم و بعد است این الله لا يغفر أي يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء و من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. شرک آوردن به او را نمی آمر زد و جز آن هر گناهی را برای هر که بخواهد می آمر زد و هر کس به خدا شرک آورد پس بدون شک در گمراهی دوری افتاده است ای یدعون من دونه الا الانا و وان يدعون الا و اي يدعون الا شيطانا مريدا مشركان جز خدا چیزها ماده را میخوانند و در حقیقت جز شیطان سرکش را نمیخوانند لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا خداوند او را از رحمت خیش دور ساخته و او گفت از بندگان تو سهمی معین خواهم گرفت. ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمرنهم فلا يبتكون آذان الأعمى ولا أمرنهم وَلَأَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُرَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ, خسر خَسْرَانًا مُبِينًا وَمُسْلِمًا آنها را گمراء میکنم و آنان را به آرزوهای باطل فکنم و به آنان دستور میدهم. که گوش چهار پایان بشکافند و وادارشان میکنم تا خلقت و آفرینش خدا را تغییز دهند و هر شیطان را به جای ولی و دوست خود بگیرد قطعا زیانی آشکار کرده است شیطان به آنها بعد می دهد و آنان را به آرزو افکند و شیطان جس فریب و باطل به آنان بعد نمی دهد. و لا یجدون آنها جایگاهشان جهنم است و هیچ راه فراری از آن نخواهند یافت.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 و کسانی که ایمان آوردهاند و کارهای شایسته انجام دادند به زودی آنان را در باغهایی از بهشت وارد می‌کنیم که نهرها از زیر درختان آنجاری است جاودانه در آن خواهند ماند بعدی خدا حق است و کیست که در گفتار از خدا راست راستگوتر باشد ليس بأمانهكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا إن فزيلة برتري برتري به آرزوهای شما و آرزوهای اهل کتاب نیست. هر کس کار بدی انجام دهد به کیفر آن خواهد رسید و جز خدا یار و مددکاری برای خود نخواهد یافت. و من یعمل من الصالحات من ذكر او انسا وهو مؤمن فأولئك فاآلکه یا دخولون الجنة و لا یظلمون نتیراق. و کسی که چیزی از کارهای شایسته را انجام دهد، چه مرد باشد یا زن، در حالی که او مؤمن باشد، اینان به بهشت داخل می‌شوند و کمترین ستمی به آنها نخواهد شد. و من احسن دینم من اَكْلَم وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا نیک آین تر است از کسی که روی خود را به خدا سپرد و کار بود و آیین پاک ابراهیم را پیروی کرد و خداوند ابراهیم را به دوستی خود برگزیده است ولله ما فی السماوات و ما فی الار وكان الله بكل شیء محیطا و آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و خداوند به هر چیزی احاطه دارد ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في الكتاب في يتمن النساء في يتمن تؤتونهن ما كتب لهن وترغون. وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما از تو أی يامبر دربار زنان فتوا میخواهند خداوند در باری آنان به شما فتوا میدهد و همچنین آنچه در کتاب بر شما خوانده می شود در باری زنان یتیمی که آنچه را که برای آنان مقرر شده است به آنها نمیدهید و می خواهید که با آنها ازدواج کنید و نیز به شما توصیه میکند و فتوا می دهد در مورد کودکان صغیر ناتوان و اینکه با یتیمان به عدالت رفتار کنید و آنچه از نیکی انجام می دهید خداوند به آن آگاه است و این امرأت خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح علیهما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 از ناسازگاری یا اعراض شوهرش بین داشت پس بر آن دو گناهی نیست که با هم صلح کنند و صلح بهتر است اگرچه نفسها را بخل فرا گرفته است و اگر نیکی کنید و پرهیزگاری پیش سازید قطعا خداوند به آنچه انجام می آگاه است ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتدروها كالمعلق وفي وَتَتَّقُوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما <تصفيق> هرگز نمیتوانید در میان زنان عدالت برقرار کنید پس یکسره به سوی یکی میل نکنید که دیگری را بلا تکلیف رها کنید و اگر راه اصلاح پیشگیرید و پرهیزگاری کنید خداوند آمرزنده مهربان است و تفر وقایغن الله كل من ساعتی ووك الله وتی عن حکیم و اگر آن دو از یکدیگر جدا شوند خداوند هر کدام از آنها را با فضل و کرم خود بیناز میکند و خداوند گشایشگر حکیم است.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 و آنچه چه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست. و ما به کسانی که پیش از شما کتاب به آنها داده شدند و نیز به شما سفارش کردیم که از خدا بترسید و یکتا پرست باشید. و اگر کافر شوید بدانید آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست و خداوند بینیاز و ستوده است. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلَ و با آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست کارسازی و خدا برای کار کافی است. إِيَّا شَيْءٌ يُذْهِبَكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وكان الله على ذلك قدیرا ای مردم اگر او بخواهد شما را از میان میبرد و دیگران را میآورد و خدا بر این کار تواناست من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة و الله سمیعا بصیرا هر کس که پاداش دنیاوی بخواهد پس بداند که پاداش دنیا و آخرت نزد خداست و خداوند شنوای بیناست یا <تصفيق>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 ای کن غنیم یا فقیر ف الله أولا به ما ف لا تتبع الهوا تعدلو و انتلو الله بما تعملون کسانی که ایمان بر پادارنده ادالت باشید برای خدا شهادت دهید اگرچه به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما باشد اگر مدعی علیه توانگر یا فقیر باشد به هر حال خداوند به آنان سزاوارتر و مهربانتر است پس از هوای نفس پیروی نکنید که از حق منحرف می شوید و اگر زبان را بگردانید، و حق را تحریف کنید یا از اظهار حق اعراض کنید مسلما خداوند به آنچه انجام می دهید. آگاه است یا أيها الذین آمنوا آمنوا بالله و رسوله والکتاب الذی نزل على رسوله وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي مِنْ قَبْلِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَانًا بَعِيدًا ای کسانی که ایمان به خداوند و پیامبرش و کتابی که بر او نازل کرده و کتابی که پیش از این فرستاده است ایمان بیاورید برید و هرکس به خدا و فرشتگان و کتابهایش و پیامبرانش و روز قیامت کافر شود به تحقیق در گمراهی دور و درازی افتاده است ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا فمزاد كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا هم كسانی که ایمان آورده اند سپس کافر شده باز ایمان آورده سپس کافر شده آنگاه بر کفر خود ابزودند خداوند هرگز آنان را نخواهد بخشید و آنها را به راه راست هدایت نخواهد کرد. بشیر المنافقین بی ان لهم عذاباً به منافقان بشارده که برایشان عذابی دردناک است. الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ العزة فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا آنان که کافران را به جای مؤمنان به دوستی برمی آیا به نزد آنان عزت می پس بدانند که عزت همه از آن خداست. و قد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزؤ بها فلا تقعدوا, فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. و مسلما خداوند در قرآن این حکم را بر شما نازل کرده که چون شنیدید افرادی آیات خدا را انکار می کنند و آن را بریشخند می گیرند با آنان ننشینید تا به سخن دیگری بپردازند و اگر با آنان بنشینید در این صورت قطعا شما هم مانند آنها خواهید بود همانا خداوند همه منافقان و کافران را در جهنم گرد می آبرد. الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا أَلَمَّكُمْ معكم وان كان للكافرين نصيب قالوا, قالوا ألم استح عليكم ونمنعكم من المؤمنين والله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كسانيك همواره انتظار میکشند و مراقب شما هستند اگر فتح و پیروزی از جانب خدا نصیب شما گردد میگویند مگر ما شما نبودیم و اگر بهره این نصیب کافران گردد گویند مگر ما بر شما چیره نشده این و پشتیبان شما نبودیم و شما را از آسیب مؤمنان باز نداشتیم پس خداوند در روز قیامت میان شما داوری میکند و خداوند هرگز برای کافران راهی به مؤمنان قرار نداده است ان المنافقين <سؤال> يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا بالصلاه قاموا كسالا قاموا تسالا يراؤون الناس ولا ينصرون الله الا قليلا بشك منافقا به گمان خودشان خدا را فریب میدهند در حالی که او آنها را فریب میدهد و چون به نماز برخیزند با سستی و کاهلی برمیخیزند در چشم مردم خود نمایی می کنند و در نمازشان خدا را جز اندکی یاد نمی کنند تجیدنه منافقان بین این دو گروه مؤمنان و کافران دو دل و سرگشته اند. نبا اینانند و نبا آنانند و هر کس را که خداوند گمراهی کند راهی برای او نخواهی یافت <تصفيق> ایوها الذین آمنوا لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبین ای کسانی که ایمان آبردید کافران را به جای مؤمنان دوستان خود نگیرید آیا میخواهید با این کار برای خداوند دلیل آشکاری بر ضد خود پدید آورید این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولا تجد لهم نصيرا. همانا منافقان در پایین ترین طبقه آتش جهنم هستند و هرگز یا بری برای آنها نخواهی یافت. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما مگر آنان توبه کردند و جبران و اصلاح نمودند و به خداوند تمسک جستند و دین خود را برای خدا خالص کردندند. پس اینان با مؤمنان خواهند بود و خداوند به زودی مؤمنان را پاداش بزرگی خواهد داد. ما يفعل الله وکن الله شاکرا خدا چه نیازی به عذاب دادن شما دارد اگر سپاس گذاری کنید و ایمان آورید و خداوند شکر زار